گرامیان درود بر شما فایل آوایی نهم از کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نونفخر رو با هم آغاز می کنی. صفحه 118 عنوان اثر پیگمالیون پیگمالیون نام یک مجسم ساز یونانی یونانی است. او عاشق مجسمه شد که خودش ساخته بود رابرت روزنتال و لنور جیکوبسون در مطالعی سعی کردن نشان دهند وقتی معلم‌ها شاگردانشان را دست بالا می‌گیرند همین توقع بالا و تلقی مثبت آنها موجب عملکرد بهتر و پیشرفت شاگردان می‌شود و عکس آن نیز صادق است این یعنی آنچه دیگران در مورد ما می‌گویند و تعریفی که دیگران از ما ارائه می‌دهند می‌تواند مورد پذیرش و باور ما قرار گیرد و موجب شود بیشتر تلاش کنیم تا خود را با تعریف خوبی که از ما شده منطبق گردانیم و یا تلاش را رها کنیم چون به واسطه ی تعریف بدی که از ما شده از خودمان نمی‌بینیم بتوانیم در آن زمینه موفق شویم در جوامع مختلف تفکرات کلیشهای یا طرواره ها یا استریوتایپ هایی وجود دارد که ریشه در سنت و دین دارند و تعریفی را از گروه های مختلف جامعه یا زن و مرد و یا گاهی از کل جامعه و انسان ها تلقین می کند و می تواند بر روی توانایی و به فعلیت رسیدن پتانسیل های افراد مؤثر واقع شود. در مطالعی که در سال 1998 انجام شد، از زنان و مردان خواستند که لباسهای گشاد و غیر بدن نما بکوشند. سپس از آنها خواستند که مسائل ریاضی حل کنند. آنگاه از آنها خواستند که لباس شنا بپوشند دوباره خواستند که به حل مسائل ریاضی بپردازند. دیده شد که در نوبت دوم، نمره ریاضی زنان نسبت به آزمون اول کاهش یافت اما مردان همان نمره را گرفتند تفسیر محققین از این نتایج این بود که زنان پس از پوشیدن لباس شنا بیش از پیش یاد جنسیتشان افتادند و با توجه به تفکرات کلیشهای جامعه مبنی بر اینکه هوش ریاضی زنان کمتر است به طور ناخداگاه اعتماد به نفسشان در حل مسائل ریاضی را از دست دادند. در تحقیق دیگری که توسط نالینی آمبادی بر روی دختران آسیایی دبستانی تا دبیرستانی مدارس آمریکا انجام شد، مشاهده گردید، وقتی قبل از آزمون ریاضی آنها را به یاد آسیایی بودنشان انداختند، مثلا از آنها خواستند در مورد قضاها و فرهنگ کشورشان حرف بزنند، نمره ریاضیشان بالاتر از نمره گروه شاهد شد. در آمریکا این فکر ای که آسیایی ها حوش ریاضی بالاتری دارند رواج دارند. اما وقتی آنها را پیش از آزمون ریاضی با سوالاتی مثل چه لباسهایی دوست داری و از این قبیل به یاد جنسیتشان انداختند، نمرات آنها پایین تر از گروه شاهد شد. این نتیجه در همه دختران از شش سال به بالا دیده شد. در مطالعه دیگر که بر روی مردان سیاه پوست و سفید پوست صورت گرفت، از آنها خواسته شد در یک آزمون گلف شرکت کنند. به گروه اول گفته شد که قرار است هوش ورزشی آنها سنجیده شود. در این گروه سفید پوست ها امتیاز بیشتری از سیاه پوست ها کسب کردند. به گروه دوم گفته شد قرار است توان جسمی آنها بررسی شود. سپس همان آزمون را انجام دادند. این بار سیاه پوستان امتیاز بیشتری کسب کردند. به نظر می آمد این فکر کلیشهی یا استریوتایب که سفید پوستان از سیاه پوستان باهوشترند، و سیاه از سفید پوستان ترند باعث شده بود یادآوری این طرح های اجتماعی موجب گردد خود افراد پیشبینی ناخداگاه خود را محقق کنند در ادیان تعاریف مختلفی از گروه های مختلف مردم می و همین تعاریف در ذهن مؤمنین و مردم آن جامعه دینی می نشیند و مردم خودشان به محقق شدن آن تعاریف کمک می‌کنند یعنی این تعاریف می‌تواند صفات مختلف افراد را به فعلیت درآورد، و یا جلوی شکوفا شدن پتانسیل‌های بعضی دیگر از گروه ها را بگیرد به این ترتیب تعاریف آن دین از مردم و یا از گروه‌های خاص درست از آب در می‌آید و شاهدی می‌گردد در تعیید حکمتآمیز بودن احکام آن دین چرا که احکام یک دین متناسب است با تعریفی که آن دین از گروههای مردم دارد مثلا اگر دینی زنان را موجودات کم عقل و ناشایست برای مناسبی همچون قضاوت تعریف کرده باشد این حتی اگر منجر به موانع قانونی برای پیشرفت زنان نشود می تواند بسیاری از زنان مؤمن را از تحصیل در رشته های قضایی و تلاش برای رسیدن به پست قضاوت منصرف کند و جمعی بزرگ از زنانی که پیشرفتی در این زمینه نداشتند را به خود مؤمنین نشان دهد و آنها با مشاهده این جمعیت شاهد هرچه بیشتر به حکمت آمیز بودن آنچه در دینشان در مورد زنان گفته شده ایمان آورند و حتی از پیشرفت زنان دیگر که قصد شکستن این طرحواره را دارند جلوگیری کنند. در حالی که در واقع میخواهند با نیت خیر جلوی هدر رفتن وقت و انرژی آن زنان پیشرو و خجشکن را بگیرند و قصد بدی ندارند طرحواره یا استریوتایپ ناکامل بودن عقل ما برای سنجش و ارزیابی احکام الهی نیز از همان ابتدا ما را از اینکه بتوانیم با عقل خود باورهای دینمان را نقد کنیم و یا احکام دینمان را به لحاظ اخلاقی بودن محک بزنیم منصرف می می‌کند در بین هندوها باور بر این است که به دنیا آمدن در هر طبقه اجتماعی یا کاست نتیجه کارمای زندگی قبلی است پس امری به حق و شایسته است و لذا ورود به مشاغل مربوط به طبقات بالاتر در صلاحیت طبقات پایینتر نیست اگرچه قوانین هند در این زمین سکولار هستند و مایل به شکستن این استریوتایپ میباشند اما خود مردم در حفظ این قاعده دینی میکوشند و بسیاری از مردم خودشان هم تمایلی به راهیابی به مشاقل بالاتر ندارند و شاید استریوتایپ‌های حاصل از این باور دینی در ادامه این پدیده در هند بیتحصیر نباشد. به این ترتیب مؤمنین به نظرشان می‌آید که احکام و قوانین دینیشان منطبق با فطرت الهیشان تنظیم شده. حالانکه که آنچه فطرت الهی می پندارند تا حدود زیادی محصول استریوتایی های دینیشان است یعنی مؤمنین تعاریف دین را از خودشان باور می کنند و ناخداگاه تبدیل به همان می شوند که دینشان گفته پس به ستایش از خدایی می پردازند که به نظرشان از قبل به درستی گفته بود آنها قادر به چه کارهایی هستند و قادر به چه کارهایی نیستند مؤمنین اینچنین همچون پیگمالیون عاشق مجسمهای میشوند که خودشان ساختهاند مجسمهای که اگر باور آنها به استریوتایپهای دینیشان نبود اصلا ساخته نمیشد و زنان و مردان و افراد گروههای مختلف جامعه دینی تا آن حد شبیه تعاریف دینشان از آنها نمیشدند دیدیم که تجربیات نشان میدادند انسانها به محض فراموش کردن این افکار که بیشه ای افرادی دیگر میشوند با استعدادهای دیگر مثلا همان کسانی که عقل خود را برای نقد احکام و عقاید دین خود ناقص میدانند احکام و عقاید ادیان دیگر را با اعتماد کامل به عقل خودشان نقد و حتی مسخره می کنند. و به درستی نتایجی که میگیرند اعتماد دارند. عنوان: فیزیولوژی نفظ کلام روحانیت در ذهن مؤمنین ادیان سه ادعا دارند: یکی اینکه هستی را میشناسند، یعنی میدانند این جهان و جهانهای دیگر چگونه جاهایی هستند و چه قوانینی بر آنها حاکم است. دوم اینکه انسان را میشناسند، و از طبیعت و نیازهای او باخبرند سوم اینکه راه رستگاری و سعادت انسان را میدانند بنابراین مؤمنین برای شناخت جهانی که در آن زندگی میکنند و جهانهایی که پیشتر در آنها زندگی کردهاند و بعداً در آنها زندگی خواهند کرد و دانستن راه خوشبختی در این زندگی و زندگیهای بعدی به کسانی رو میآورند که مدعی هستند دین را میشناسند این مدعیان دانش دین را روحانی مینامند در واقع اگر از این زاویه نگاه کنیم طبقه یا صنف روحانی محصول و زائیده نیاز مؤمنین است همانطور که بسیاری مشاغل دیگر هم زایده دیگر نیازهای افراد جامعه اما مؤمنین چگونه آنچرا روحانیون مورد اعتمادشان می گویند بدون طرح پرسش نقادانه و بحث و جدل و شک و تردید و چانهزنی قبول می کنند. شاید اولین دلیلش اجماع روحانیون باشد. یعنی وقتی اغلب روحانیون با یک گزاره یا با یک حکم موافقند مؤمنین به همان اجماع بسنده می کنند و گفته روحانی مورد نظر را می پثیرند. اما بسیار دیده می شود که یک روحانی می تواند حرفی خلاف بقیه روحانیون بزند و باز هم طرفدارانش حرف او را بپذیرند. ببینیم چگونه کلام روحانیون در ذهن اهل ایمان نفوذ میابد. عنوان نظریه کارگذاری در جنگ جهانی دوم نسل کشی بزرگی از یهودیان صورت گرفت که به هولوکاست معروف شد. بعضی از کسانی که در این کشتار دخیل بودند، محاکمه شدند. از جمله آدولف آیشمن که از سازمان دهندگان این نسل کشی بود. آنها در دادگاه نورنبرگ ابراز می می‌کردند که فقط دستورات مافوق را اجرا کردند. سؤالی ذهن استنلی میلگرام، روانشناسی در دانشگاه ییل را به خود مشغول کرد. آیا آیشمن و همدستان بیشمارش فقط از دستورات پیروه می در واقع سوال این بود که مسئولیت آنها در این نزل کشی چقدر بود؟ مسئولیت آنجا می آبد که اختیاری وجود داشته باشد. پس سوال بعدی این است. آنها چقدر در این ماجرا احساس اختیار می کردند؟ باز هم در این پرسش ها جلوتر می روی. اگر آنها خواستند با حزب نازی همکاری کنند و عضوی از آن باشند آیا معنیش این است که خودشان هم در مورد نسل کشی یهودیان به همین نتیجه می رسیدند که باید هولوکاست انجام پذیرد؟ یا در این مورد اختیارشان را به فرمانده بالاتر سپرده بودند و چیزی جز کارگزار او نبودند؟ اختیار اختیار خودشان بود؟ یا اختیار فرمانده ایشان. مسئولیت مسئولیت خودشان بود یا مسئولیت فرمانده توجه داشته باشید که این یک سؤال اخلاقی نیست بلکه یک سؤال است یعنی میلگرام میخواست بداند این افراد در زمان اجرای فجایع هولوکاست حس میکردند میدانند چه کاری میکنند و به اثرات کارشان به تمامی واقف بودند یا اینکه تنها بر اساس اعتماد کامل به فرماندهی کل و اینکه فرماندهی کل به همه چیز فکر کرده و درست و غلط را میشناسد آن اعمال را انجام میدادند و مسئولیت نتایج را هم بر عهده فرماندهی کل می دانستند. آیا ممکن است انسانها ناخداگاه مسئولیت همه چیز را به گردن دیگری بیاندازند و خودشان را به کارگزار و عامل او تبدیل کنند اگر اینطور است تحت چه شرایطی این کار را به صورت اتوماتیک انجام دهند؟ تا کجا در این کار پیش روند و بالاخره چه زمانی به مسئولیت اخلاقی خودشان فکر میکنند میلگرام در سال 1963 آزمایشات نسبتاً مفصلی برای مشاهده عوامل مؤثر و رفع مسئولیت افراد از خودشان و تبدیل کردن داوطلبانه خودشان به کارگزار دیگران انجام داد. او داوطلبان را از طریق آگهی در روزنامه‌ها برای شرکت در یک مطالعه به دانشگاه یل دعوت کرد. هر کدام از داوطلبان با یک نفر دیگر که ظاهرا او هم داوطلب شرکت در آزمایش بود ولی در واقع همکار میلگرام بود وارد جریان آزمایش می شدند. با به آن دو گفته می شد قرار است طبق قرعه کشی یک نفر از آنها نقش آموزگار و دیگری نقش دانش آموز را داشته باشد قرعه کشی همیشه به گونه ای انجام می شد که نقش آموزگار به داوطلب واقعی تعلق بگیرد و نقش دانش آموز به همکار میلگرام بیفت کسی که نقش دانش آموز را به عهده می و نامش آقای والاس بود به داخل اتاق مجاور برده می و الکترودهایی به دستش متصل می گشت و دستانش هم به صندلی بسته می شود. داوطلب واقعی و همراه شخص دیگری که روپوش خاکستری به تن داشت و نقش محقق را بازی میکرد و خودش را آقای ویلیام معرفی میکرد در اتاق اصلی میماندند در اتاق اصلی یک دستگاه مولد شوک الکتریکی وجود داشت که دارای سی دکمه بود هر دکمه نوشته ای داشت که مشخص میکرد زدن آن دکمه چند ولت شوک الکتریکی به شخص دانش آموز وارد می کند. دکمه ها از 15 ولت تا چهارصد و پنجاه ولت لیبل خورده بودند. وضعیت اتاق به بگوونه بود که صدای ناله یا فریاد شخص دانش آموز به راحتی به گوش شخص آموزگار می رسید. در دور اول این مطالعه چهل نفر مورد آزمایش قرار گرفتند. در حضور داوطلب واقعی به کسی که ظاهرا نقش دانش آموز به نامش افتاده بود، یک لیست از زوج کلماتی داده می که باید به خاطر میسپرد. آنگاه که به صندلی بسته میشد و الکترودها به او متصل می گشت، از داوطلب آموزگار خواسته می تا هر کلمه را بخواند و ببیند آیا دانش آموز میتواند زوج آن کلمه را از بین چهار گزینه به یاد آورد یا نه؟ آموزگار میبایست هر بار که دانش آموز پاسخ اشتباه میداد یک شوک الکتریکی به او وارد میکرد و با اشتباه های بعدی قدرت شوک الکتریکی را افزایش میداد دانش آموز امدتن و عمدن جواب غلط میداد و آموزگار هر بار شک قوی تری میداد و فریاد بلندتری از دانش آموز به گوشش می رسید هر وقت کار به جایی می رسید که فریادهای دانش آموز آموزگار را از ادامه کار منصرف می کرد آقای ویلیام یا همان محقق خاکستری پوش به ترتیب هر بار جمله ای می گفت و آموزگار را به ادامه همکاری دعوت می کرد بار اول می گفت لطفا ادامه دهید. بار دوم دو می گفت این آزمایش به ادامه همکاری شما نیاز دارد. بار سوم سو می گفت قطعاً ادامه همکاری شما امری اساسی است و بار چهارم می گفت شما انتخاب دیگری جز ادامه همکاری ندارید. نتیجه این شد که همه داوطلبان تا زدن دکمه 300 ولت پیش رفتند. و 65 درصد داوطلبان تا پایان یعنی تا زدن دکمه 450 ولت ادامه دادند در آگهی روزنامه به داوطلبان وعده 4.5 دلار داده شده بود و نیز گفته شده بود که این 4.5 دلار صرفاً با آمدن آنها به دانشگاه به ایشان تعلق می‌گیرد و آنچه بعد از ورود آنها به دانشگاه اتفاق می‌افتد در پرداخت این 4.5 دلار تأثیری ندارد در زیر هر گروه چهارتایی از دکمه شوک الکتریکی نوشته ای بود که حاکی از تأثیر آن دکمه ها بر روی آزمایش شونده بود. زیر چهار دکمه اول نوشته شده بود شوک خفیف، چهار دکمه بعدی شوک متوسط تا آنجا که کنار دکمه های 25 تا 28 نوشته شده بود خطر شوک بسیار شدید و زیر دو دکمه آخر نیز علامت سه ایکس درج شده بود دیدیم داوطلبان اختیار کار را به محقق می سپردند محقق یا همان آقای ویلیام یک بازیگر بود که به خوبی نقش یک مرد دانشمند و با اعتماد به نفس و جدی را بازی می کرد که گویی به خوبی میداند چه می کند رفتار او در کنار روپوش خاکستری رنگش و اینکه آزمایش در یک دانشگاه معتبر صورت می گرفت این باور را به شرکت کننده الغا می کرد که این شخص محقق توسط مراجع قانونی و اخلاقی جامعه حمایت و تایید می گردد و مسئولیت هر آنچه اتفاق بیفتد نیز به عهده او و کسانی است که او را تایید کردهاند و اجازه حضور در این مکان و انجام این آزمایش، و پوشیدن این لباس را به او دادهاند. البته داوطلبان چندان با کاری که میکردند راحت نبودند. آنها اگرچه با محقق همکاری می کردند اما علائم استرس و ناراحتی را نشان می دادند. این علائم شامل عرق کردن، اختلال در تکلم، لرزیدن، خنده عصبی، گاز گرفتن لب و فشردن ناخن به کف دستشان بود. ستا از داوطلبان دچار تشنط شدند و تعداد زیادی از آنها التماس میکردند که آزمایش متوقف شود. البته وقتی به آنها گفته می شد که حال داوطلب دانش آموز خوب است و خودشان او را می دیدند که سالم است، استرسشان کاهش می آفت. میلگرام نتیجه گرفت اگر مردم تشخیص دهند کسی به لحاظ اخلاقی و یا قانونی صاحب صلاحیت است، تمایل دارند که از او اطاعت کنند. او عقیده داشت این واکنش ما در برابر صلاحیت مشروع در طول زندگی و در خانواده، مدرسه و محل کار به ما آموزش داده می شود. میلگرام در نظریه‌ای به نام نظریه کارگزاری یا ایجنسی تیوری گفت افراد در موقعیت های اجتماعی ممکن است دارای دو حالت در رفتارشان باشند یا خودشان رفتارشان را مدیریت می کنند و مسئولیت و عواقبش را میپذیرند یا به دیگران اجازه می دهند رفتار آنها را مدیریت کنند و مسئولیت و عواقب آن را نیز بر دوش همان دیگران میدانند. در این حالت دوم آنها صرفاً کارگزار یا عامل دیگران هستند او در نظریه کارگزاری گفت برای اینکه افراد وارد حالت کارگزاری شوند باید دو چیز را باور کنند اول اینکه کسی که دستور می‌دهد صاحب صلاحیت قانونی است دوم اینکه شخص صاحب صلاحیت مسئولیت اعمال کارگزار را می‌پذیرد میلگران برای ارزیابی نظریه اش به تحقیق ادامه داد و این آزمایش را در هجده حالت مختلف و در شرایط مختلف به اجرا را و در مجموع از 636 داوطلب استفاده کرد. در یکی از آزمایش ها به دافتلبان گفته می که عواقب دادن شک بر عهده خودشان است. تقریبا هیچ کس شک دادن را ادامه نداد. در یکی دیگر از آزمایش ها، برای سنجیدن اثر لباس شخص صاحب صلاحیت ویلیام یا همان مرد محقق دارای روپوش خاکستری به بهانه پاسخ دادن به تلفن از اتاق به بیرون فراخوانده میشد و شخص دیگری با لباس معمولی جای او را گرفت. در این حالت اطاعت از 65 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرد برای سنجیدن اثر اعتباری که ساختمان به شخص صاحب صلاحیت می‌داد، داوطلبان به محلی غیر از دانشگاه یل دعوت شدند. این بار اطاعت داوطلبان به نیم درصد کاهش یافت. در حالتی دیگر، دو داوطلب دیگر همزمان در کنار داوطلب اصلی حضور داشتند که در واقع هر دو همکار میلگرام بودند. یکی از آنها در ولتاژ 150 و دیگری در ولتاژ 2010 کنار میکشیدند و ابراز میکردند که دیگر حاضر نیستند ادامه دهند. در این حالت فقط ده درصد از داوطلبان واقعی تا پایان ادامه دادند و بقیه با سرمشق گرفتن از آن دو کنار کشیدند. بین عوامل موثر در آزمایش میلگرام و خصوصیات و شیوه هایی که روحانیون ادیان دارند تشابهاتی دیده می شود که میتواند تا اندازه توضیح دهد چرا مؤمنین از ایشان تبعیت میکنند. معمولا روحانیون به طور رسمی و قانونی دارای مدارس و مراکزی هستند که در آنجا تحصیل یا تدریس میکنند و مورد حمایت قانون هستند و حتی ممکن است در حاکمیت شراکت داشته باشند. لباس روحانیون توسط همان مراکز و طبق زوابط همان حوزه های علمیه و محل پرورش روحانیون به تن آنها پوشانده می شود و این موجب می گردد مردم عادی فکر کنند هر آنچه از یک روحانی می مورد تایید بقیه دستگاه روحانیت نیز می باشند. روحانیون نیز معمولا مانند محقق خاکستری پوش با مردم وارد مباحثه و مجادله نمی شوند و با اطمینان و اعتماد به نفس و با ژست دانایی کامل فقط نظر نهایی و حکم فقهی خود را میگویند و از لزوم اطاعت از نظراتشان صحبت می کنند آنها هیچ بحثی نمی کنند و دلیلی نمیآورند. به این ترتیب مؤمنین تصور می کنند که آنها فکر همه چیز را کرده در آزمایش میلگرام نیز محقق خاکستری پوش با کسی که از ادامه کار سر باز میزد وارد بحث درباره جزئیات و علت آزمایش نمیشد. احتمالا اگر او شروع به استدلال می کرد، شرکت کننده احساس میکرد سخنان محقق را میفهمد و لذا طبق فهم خود با آن دلایل مخالفت می کرد و به این ترتیب ناگهان خود را از نظر دانایی هم سطح محقق میدید و دیگر اطاعت نمی کرد جدیت و حرف بودن و جست دانایی و تسلط بر همه چیز تأثیر بسزایی در نشان دادن صلاحیت دارد و نباید در اثر مجادله با مردم خدشه پیدا کند جیکوب مورنو بنیانگذار سایکودراما یا نمایش درمانی عقیده داشت انسان موجودی بازیگر است و انسان ها تحت تأثیر بازی یکدیگر قرار میگیرند و آن را باور می کنند. به نظر میرسد ما انسان ها بیش از آنکه تحت تأثیر کلام یکدیگر قرار گیریم تحت تأثیر جست ها و بازی های هم قرار میگیریم و بازی ما تأثیر بسزایی بر باور پذیری حرف ما دارد. حتی ممکن است مخاطب ما اصلا حرف ما را نفهمد و صرفا به دلیل جست های ما ما را باور کند و تسلیم خواستهٔ ما شود محقق خاکستری پوش یا یک روحانی نباید ذری تردید و دودری در لحن و صدا و حرکات خود نشان دهند مهم نیست مضمون حرفهایشان درست است یا غلط دروغ است یا راست و اصلا آنها واقعا به آنچه میگویند باور دارند یا نه مهم این است که در حرکاتشان اثری از تردید وجود نداشته باشد همچنین لباسی که به تن دارند ساختمانها و تشکیلات بزرگی که از آن مشروعیت میگیرند و حکومتی که آن تشکیلات را قانونی میشمارد صلاحیت و داناییشان را به مردم تلقی میکند. اما هنوز شرط دوم نظریه کارگزاری میلگرام مانده و آن پذیرش مسئولیت اعمالی است که مؤمنین در پی انجام احکام و دستورات روحانیون به دوش دارند آیا مسئولیت انجام احکام هم بر عهده روحانیون است کافی است که روحانیون به طریقی به مؤمنین بقبولانند قوانین هستی چنان است که اگر آنها بنا را بر تکیه به گفته های یک روحانی و تقلید از او بگذارند دیگر خودشان مورد مؤاخذه الهی قرار نخواهند گرفت و اگر هم روحانی اشتباه کرده باشد جزایی شامل مؤمن مقلد نخواهد شد. اینچنین هر دو شرط مطرح شده در نظریه کارگزاری میلگرام برای اطاعت مؤمن از روحانی نیز محقق می‌گردد و شخص مؤمن مثل اکثر انسان‌ها می‌تواند از عمل انرژی بر و طاقت فرسای فکر کردن به نتایج هر کاری و تجزیه و تحلیل جهت پیشبینی آخر و عاقبت هر حکم دینی و ترس از مؤاخذه شدن دست بردارد و با خیال راحت از روحانیون یا از یک روحانی خاص اطاعت کن. در واقع روحانیون به نوعی مؤمنین را در قبال مسئولیت نسبت به اعمالشان بیمه می کنند. فقط مسئله اینجاست که نتایج و اعتبار این بیمه مسئولیت قرار است در زندگی بعد از مرگ ارزیابی شود. این بیمه مسئولیت می تواند شامل وجوهات شرعی هم بشود. وجوهات شرعی است که پرداخت آن برگردن مؤمن است. اگر مؤمن بمیرد و هنوز آنها را پرداخت نکرده باشد، در زندگی بعدی معاخزه و عذاب می شود. ممکن است مؤمنین بهترین راه برای صرف وجوهات شرعی را ندانند و یا نتوانند تصمیم بگیرند اموال وقفی در راه خدایشان را به چه کاری اختصاص دهند تا پاداش اخروی بهتری بگیرند. روحانیون می توانند مسئولیت صرف به جا و خدا این اموال را هم به عهده بگیرند و مؤمن تشویق شود وجوهات شرعی و اموال وقفی خود را هم به یک روحانی بسپارد و این بار را از دوش خود بردارد. دیدیم که در یکی از آزمایش های میلگرام، وجود افرادی که با ادامه کار و افزایش ولتاژ مخالفت می کردند، این سرمشق را به دووطلب میداد که می توان با محقق مخالفت کرد و میزان اطاعت از 65 درصد به ده درصد کاهش یافت. روحانیون هم معمولاً در جمعی که در آن مخالفی حاضر باشد که سخنان آنها را زیر سوال ببرد حضور نمی و، اگر هم کسی مخالفت کند، در میان جمع وارد مباحثه استدلالی و محاجه با او نمی شود. انچنان که گویی شعن خود را بالاتر از آن نشان می دهند که با افراد نادان بحث کنند. مؤمنین بسیار به ندرت بحث مستقیم روحانیون بزرگ را با یک مخالف می بینند. گرامیان همینجا در صفحه 131 فایل آوایی نهم از کتاب فیزیولوژی ایمان رو به پایان میبرید. تا دورودی دیگر بدرود.